معنای تسلیم پذیرش لحظه ها شما چندین بار درباره تسلیم سخن گفتید. من از این کلمه خوشم نمی آید. از این کلمه بوی جبر گرایی به می رسد اگر همیشه چیزها را همان گونه که هستند بپذیریم، هرگز نمی توانیم کاری کنیم که آنها بهتر از چیزی شوند که هستند. به نظر من پیشرفت چه در حوزه شخصی و چه در حوزه عمومی و جمعی، نتیجه‌ی آن است که محدودیت‌های موجود در لحظه اکنون را نپذیریم. و به فراسوی آنها برویم و چیزی بهتر بیافرینیم اگر این کار را نکرده بودیم حالا باید در قارها زندگی میکردیم چگونه میتوان تسلیم را با دگرگون کردن اوضا و احوال آشتی داد؟ برای بعضی ها ممکن است واژه تسلیم مضمونی منفی داشته باشد شکست، عقب نشستن، ابراز ناتوانی در برابر چالش های زندگی خمودگی و غیره اما تسلیم حقیقی چیزی است ورای همه اینها تسلیم به معنای نیست که با هر وضعیتی که هست بسازی و دست از عمل برداری تسلیم به معنای آن نیست که طرح و برنامه‌ای نداشته باشی و اقدامی نکنی تسلیم به معنای بصیرت تشخیص مشیت الهی و ضدیت نکردن با جریان زندگی است تنها جایی که می توانی جریان زندگی را تجربه کنی لحظه حال است بنابراین تسلیم پذیرش بیچون و چرای لحظه حال است تسلیم کنار گذاشتن مقاومت درونی است نسبت به آنچه هست مقاومت درونی نگفتن از طریق قضاوت کردن و احساسات منفی داشتن بان چیزی است که هست این مقاومت وقتی آشکارتر است که چیزی بر وفق مراد نباشد یعنی شکافی بین خواسته های تو و واقعیت های موجود پدید آمده باشد این شکاف شکاف درد و رنج است اگر به اندازه کافی عمر کنی متوجه می شوی که اوزا و احوال همیشه بر وفق مراد تو نخواهد گشت درست در همین لحظه هاست که به تسلیم نیازمندی اگر میخوایی دوچار درد و رنج و اندوه نشوی. پذیرش آنچه هست، بیدرنگ تو را از یکی انگاری ذهن میرهاند و بدینسان تو را با هستی مرتبط میسازد. مقاومت یعنی ذهن تسلیم پدیده ایست کاملا درونی. تسلیم به معنای آن نیست که در سطح بیرونی عمل نکنی، و وضعیت نامطلوب امور را تغییر ندهی تسلیم به معنای پذیرش کل وضعیت امور نیست بلکه به معنای پذیرش بخشی کوچک از این کل یعنی پذیرش لحظه حال است برای مثال اگر در گل و لای افتادی نباید بگویی خب خودم را ول می کنم تا در گل لای فرو بروم ول کردن خود اصلا به معنای تسلیم نیست. لازم نیست که وضعیت نامطلوب و ناخوشایند زندگی خود را بپذیری تا بدین سان تسلیم بوده باشی. نباید خود را فریب بدهی و بگویی در گل فرو رفتن چیز بدی نیست. نه، تو کاملا میدانی که دوست داری از گل و لای بیرون بیایی. آنگاه توجه خود را به لحظه حال معطوف کنی بیان آنکه بر چسب خاصی رویان بچسبانی. به بدین معنا که در لحظه حال قضاوت نمی کنی بنابراین دیگر مقاومت و یا احساسات منفی در تو وجود نخواهد داشت. تو بودن لحظه حال را میپذیری آنگاه اقدام می و با تمام وجود میکوشی و از لای بیرون میایی چون این اقدامی اقدام مثبت است اقدام مثبت بسیار موثرتر از اقدام منفی است اقدام منفی زاده خشم یعص و یا ملالت و خستگی است تا رسیدن به نتیجه مطلوب تسلیم را تمرین کن یعنی بر چسبی به لحظه حال نچسبان بگذار مثالی بزنم تا این نکته را برایت ساده‌تر کنم شب است و تو پیاده در جادهی سفر می‌کنی مه همه جا را پوشانده است اما نور قوی یک چراغ قوه مه را میشکافت و راهی باریک و صاف را در مقابل چشمان تو می گشاید. مه وضعیت زندگی توست. وضعیتی که شامل گذشته و آینده نیز می شود. نور قوی چراق قوه حضور آگاهانه توست. راه باریک و صاف نیز لحظه حال است. عدم تسلیم، وضعیت روانی تو را سفت و منقبض میکند یعنی پوسته نفس را و بدین سان حسی قوی از جدایی میآفریند آنگاه دنیای پیرامون تو و بویژه آدمها تهدیدی جدی به نظر میرسند اینجاست که احساس میکنی دوست داری با قضاوت خود دیگران را ویران کنی دوست داری رقابت کنی دوست داری چیره شوی حتی طبیعت نیز به نظرت تهدیدآمیز می آید و در نتیجه ترس بر تفسیرها و تصورات تو حاکم می شود. بیماری روانیی که پارانویا نامیده می شود فقط کمی وخیمتر از این حالت آگاهی است. نه تنها وضعیت روانی تو بلکه وضعیت فیزیکی تو یعنی عضلات بدن تو نیز در اثر مقاومت سفت و منقبض می شوند. در قسمتهای گوناگون بدن خود، احساس تنش میکنی و کل بدن تو واکنش نشان میدهد. جریان آزاد انرژی در بدن تو که برای سلامت بدن تو ضروری است به شدت محدود می شود. های بدنی و بعضی از فیزیوتراپی ها برای برقراری دوباره این جریان انرژی مفیدند. اما اگر تسلیم را در زندگی روزانه خود تمرین نکنی فعالیت های بدنی و فیزیوتراپی ها تسکینی موقتی میشوند زیرا علت اصلی یعنی الگوی ذهنی مقاومت هنوز از بین نرفته است حقیقتی در درون تو هست که شرایط و وضعیتهای گذرای زندگی تو نمیتوانند بر آن تأثیر بگذارند تنها به واسطه تسلیم است که به این حقیقت دست پیدا میکنی این حقیقت حیات توست وجود توست که جاودانه در اقلیم بیزمان لحظه حال ساکن است. پیدا کردن این حقیقت تنها ضرورت زندگی ماست. اگر وضعیت زندگیت رضایت بخش نیست و حتی اگر غیر قابل تحمل است، تنها به واسطه تسلیم است که می توانی ابتدا الگوی ناآگاهانه مقاومت را بشکنی، یعنی الگویی که به آن وضعیت تداوم می بخشد. و به آن وضعیت اینچنین خاتمه ببخشی تسلیم با اقدام و ایجاد دگرگونی و یا دستیابی به هدفها کاملا هماهنگ است اما در حالت تسلیم نوعی انرژی کاملا متفاوت با کیفیتی کاملا متفاوت به متن عمل تو جاری میشود تسلیم تو را به منبع انرژی هستی وصل میکند اگر عمل تو از آبشخور هستی سیراب شود، آنگاه این عمل به جشن شادمانی انرژی حیات بدل می شود که تو را به لحظه حال نزدیکتر می سازد. از طریق عدم مقاومت درونی، کیفیت آگاهی تو و در نتیجه کیفیت کارهایی که می کنی و چیزهایی که می آفرینی بی اندازه بالا خواهد رفت. نتیجه عمل و اقدام تو آینه کیفیت آگاهی تو خواهد شد می توانیم این عمل و اقدام را عملی مبتنی بر تسلیم و رضا یا عمل صالح بنامیم این نوع عمل عملی نیست که تاکنون با آن آشنا بودیم به میزانی که آدمها ها بیدارتر می شوند واجی عمل بیرنگتر تر می شود شاید بتوان واژه دیگر را جایگزین این واژه کرد. کیفیت آگاهی تو در لحظه حال است که آینده تو را تعیین خواهد کرد. بنابراین، تسلیم مهمترین عامل دگرگونی های مثبت زندگی تو در آینده خواهد بود. تمامی کارها و اقدامات تو ارزشی ثانوی دارند، هیچ اقدام حقیقتم مثبتی نمی تواند از حالت عدم تسلیم آگاهی زاده شد. چنین به نظر میاید که اگر من در وضعیتی ناخوشایند و ناخاستنی قرار بگیرم و کاملا لحظه حال را همونطور که هست بپذیرم دیگر رنج نخواهم برد. اما هنوز نمی‌توانم بفهمم که انرژی یا انگیزه لازم برای اقدام و ایجاد دگرگونی از کجا میآیند اگر قضی نارضایتی در میان نباشد؟ در حالت تسلیم کاملا مشاهده می که چه اقدامی لازم است آنگاه اقدام می کنی. در هر لحظه یک کار را انجام می و در هر لحظه فقط بر روی یک کار متمرکز می شبی. از طبیعت یاد بگیر ببین چگونه همه چیز بیان که نارضایتی و ناشادمانی در میان باشد خود را شکوفا می کند. به همین دلیل بود که مسیح گفت به لاله نگاه کنید ببینید چگونه می رویند، آنها نه حسرتی به دل دارند، نه مشقتی را تعمل می کنند، و نه دقدقی روزهای آینده آزارشان می دهد. اگر کل وضعیت زندگی تو رضایت بخش نیست، و خوشایند نیست، لحظه حال را از آن جدا کن، و تسلیم آنچه باش که در لحظه حال هست. این همان نور چراغ قوه است که در میان مه، راهی باز می‌کند بدین سان حالت آگاهی تو تحت کنترل شرایط بیرونی در نخواهد آمد تو دیگر در اختیار واکنش‌ها و مقاومت درونی خود نیستی آنگاه به جزئیات وضعیت موجود نگاهی بیانداز. از خود بپرس آیا می وضعیت موجود را دگرگون کنم آیا می وضعیت موجود را بهبود ببخشم و یا اینکه خود را از آن بیرون بکشم، اگر پاسخ مثبت است، اقدام لازم را به عمل بیاور. روی صد کاری که می توانی در آینده انجام بدهی متمرکز نشو. روی کاری متمرکز شو که در لحظه ی حال توان انجامان را داری. منظورمان نیز که نباید طرح و برنامه داشته باشی. ممکن است طرح و برنامه ریختن همان کاری باشد، که باید در لحظه حال آن را انجام بدهی مبادا دوچار فرافکنی به آینده شوی، و لحظه حال را از دست بدهی هر کار تو ممکن است بلا ثمر ندهد تا هنگام به سمر نشستن کارها در برابر آنچه هست مقاومت نکن اگر برای دگرگونی وضعیت نامطلوب موجود از دست تو کاری بر آید خود را از این وضعیت بیرون بکش اگر توان بیرون کشیدن خود از وضعیت نامطلوب موجود را نیز نداری از وضعیت نامطلوب موجود به عنوان ابزاری برای نزدیکتر شدن به ساحت تسلیم استفاده کن به ژرفهای لحظه حال برو به جرفای هستی برو در دل بزرگ و بی خداوند پناه بگیر وقتی به این ساحت بی زمان حضور می به طرزی معجز آسا همه چیز دگرگون می شود بیان که به عمل تو نیازی باشد آنگاه زندگی شیرین و سازگار می شود اگر آملهای درونی یعنی ترس احساس گناه بیحالی مانع عمل و اقدام تو می شود نگران نباش آنها در پرتو نور حضور آگاهانی تو رنگ می بازند تسلیم را با حالت دیگر برایم مهم نیست یا حالت هر چه پیشهایت خوششاید یکی نگیر. این حالت ها آلوده به منفیگرایی در شکل بیزاری پنهانند، همان مقاومت اند که نقاب به چهره زدند. وقتی در حالت تسلیم هستی خودنگر باش. ببین آیا از مقاومت درونی چیزی در تو باقی مانده است یا نه؟ وقتی این کار را می کنی خیلی هوشیار باش. خورده ای از مقاومت به شکل یک فکر و یا یک احساس ممکن است در زوایای تاریک وجود تو پنهان شده باشد گذر از انرژی ذهنی به انرژی معنوی رها کردن مقاومت درونی، گفتن ساده تر از انجام دادنش است. هنوز نمیدانم چگونه می توانم از عهدهه این کار برایم. اگر بگویید با تسلیم این پرسش پیش میآید چگونه؟ با اقرار به اینکه مقاومتی هست شروع کن. وقتی این مقاومت وجود دارد تو حاضر باش و آن را مشاهده کن. ببین ذهن تو چگونه چنین مقاومتی را می چگونه بر وضعیت ها بر تو و بر دیگران برچسب میزند. می زند. به روند فکر خود توجه کن انرژی احساس را حس کن با مشاهده مقاومت متوجه می شوی که این مقاومت هیچ فایده ای در بر ندارد با تمرکز کامل به روی لحظه حال مقاومت ناآگاهانه را به سطح آگاهی و شعور خود می آوری و آگاهانه می کنی و این خاتم دادن به مقاومت است ممکن نیست آگاه باشی و در عین حال ناشاد باشی آگاه باشی و منفیگرا باشی منفیگرایی، ناشادمانی و یا درد و رنج حاکی از آن است که در تو مقاومتی وجود دارد و مقاومت همباره نا ناآگاهانه است. مطمئاً من میتوانم نسبت به احساسات اندوهبار خیش آگاه باشم. آیا ناشادیت را خودت انتخاب کرده ای؟ اگر پاسخ منفی است پس این ناشادی از کجا آمده است؟ چه کسی آن را زنده گهمی دارد؟ میگویی که از احساسات ناشاد و اندوهبار خیش آگاه هستی اما حقیقت آن است که تو خود را با آنها همزاد و یکی پنداشتی و تویی که به مدد فکرها آنها را زنده نگه می‌داری همه آنها ناآگاهانند اگر آگاه بودی یعنی اگر در لحظه حال کاملا حضور داشتی همه ها و احساسات منفی تو بیدرنگ محو می‌شدند آنها نمی توانند حضور تو را تاب بیاورند. آنها فقط در قیاب توز که هستند. حتی تیرگی دردمندی بدن نیز نمی تواند تابش نور حضور تو را تحمل کند. دردهای عاطفی و جسمیت برطرف می شوند. تو با زمان دادن به ناشادی خیش آن را زنده نگه میداری. زمان خون شریانهای ناشادی است. با بیداری در لحظه حال، زمان را حذف کن ناشادی از بین می رود. اما آیا خواهان آن هستی که ناشادیت از بین برود؟ آیا بندازه کافی ناشاد بوده ای؟ بدون اندو تو چه کسی خواهی بود؟ تا موقعی که تسلیم را تمرین نکرده ای، بعد معنوی چیزی است که در کتابها میخوانی در بارش صحبت می کنی. از شنیدن مطلبی درباره آن به هیجان میآیی، در بارش مطلب می نویسی. دربارهش فکر میکنی به آن باور داری اما آن را با تمام سلول خود تجربه نمیکنی معنویت هنوز حقیقتی زنده در زندگی تو نشده است وقتی تسلیم را تجربه میکنی انرژی که از تو ساته میشود بسیار عظیمتر و سازنده از انرژی ذهن است دنیای کنونی ما با انرژی ذهن اداره میشود انرژی ذهن است که ساختار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دنیای کنونی ما را شکل داده است. این ذهن خود را از طریق نظام آموزشی و رسانه ها حفظ می کند. به واسطه تسلیم انرژی معنوی به کالبد جهان جاری می شود. به واسطه تسلیم است که دیگر خود را دیگران را همه شکل های گوناگون حیات را، به مصیبت دچار نمیکنی انرژی معنوی برخلاف انرژی ذهن زمین را آلوده نمیکند این انرژی در معرض قانون های متضاد نیست قانونی که میگوید هیچ چیز نمیتواند بدون ضد خود هستی داشته باشد و اینکه خوبی نمیتواند بدون حضور بدی معنا پیدا کند آنهایی که تحت سلطه انرژی ذهن هستند که اکثریت آدم های دنیا را تشکیل می دهند، از انرژی معنوی وجودشان بیخبر و بیبهره میمانند. مانند. این انرژی به عالمی دیگر سوای عالم ذهن تعلق دارد. به تعبیر حافظ شیرین سخن شیراز، آدمی در عالم خاکی نمیآید به دست. عالمی دیگر به باید ساخت نو آدمی. چون این آدمی، از همه ذهنیت ها و احساسات منفی تطهیر شده است و در جهانی زندگی میکند که یک خداست زمین را چنین آدم هایی به ارث خواهند برد در غیر این صورت زمین نابود خواهد شد مسیح در خطبه بر بالای کوه به همین نکته اشاره داشته است خوشا به حال بی آنها زمین را به ارث خواهند برد حضور آدمهای روشن و بی به تعبیر حافظ حضوری است لطیف و ناب حضوری که الگوهای ناآگاهانی ذهنی دیگران را محو میکند قبار غم را می نشاند. قرار دل را می ستاند نهال شوق را در خاطر دیگران می نشاند. راز پنهانی را بازگو میکند حضوری که در بند درمان نیست و کدورت درد را با تابش نگاه نافذ خود میزداید در ساحت حضور دیگر از زمامداری نفس خبری نیست به واسطه تسلیم وضعیت بیرونی نیز که زمانی مقاومت درونی تو را برمی‌انگیخت بیدرنگ دگرگون می شود تسلیم نیرویی است که آدمها و وضعیت ها را استحال میبخشد اگر شرایط بیدرنگ عوض نشود پذیرش لحظه حال تو را قادر می سازد که به فراسوی شرایط و موقعیت ها بروی در هر حال تو آزاد و رها خواهی شد